Oh, my God. قضاداران بیل اثر قلام حسین سائدی با صدای علی دنیاوی کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری مؤسسه انتشارات نگاه قصه اول کت خدا که از خانه آمد بیرون پاپاخ سگربابی از روی دیوار باغ شروع کرد به وقوق وق و پرید توی کوچه سگهای دیگر که روی بامهای کوتاه بل خوابیده بودند سرشان را بلند کردند و خورناسه کشیدند و کت خدا را دیدند که با هیکل دراز توی محتاب راه می رود. سرهاشان را گذاشتن روی پاهاشان و دوباره خوابیدند. چ خدا ایستاد و گوش داد صدای زنگوله از بیرون ده شنیده میشد صدای خفه و مستربی که دور میشد و نزدیک میشد و دور ده چرخ میزد. پنجره ها همه تاریک بود و یلیها خوابیده بودند آنهایی هم که بیدار بودند نشسته بودند توی تاریکی و محتاب را تماشا میکردند پاپه. آمد و ایستاد کنار خدا و بو کشید کتخدا ایستاده بود و گوش می داد. صدای زنگوله دور شد کتخدا آمد طرف استخر و پاپاخ هم به دنبالش کنار استخر که رسیدند پنجره کوچکی باز شد کلی مردی آمد بیرون. کله توی تاریکی جنبید و گفت نصف شبه کجا هم بری کتخدا ایستاد پاپاخ هم ایستاد هر دو کله را نگاه کردند کت خدا گفت حال ننه رمضان خرابه میبرم شهر پنجره دیگری باز شد کله مرد دیگری آمد بیرون و گفت عصر که حالش خوب بود مگه نه کت خدا گفت عصر خوب بود اما حالا دیگه نیست حالا دیگه حالش خوب نیست راستی اگه پیرزن بمیره چکار بکنم ها اسلام چیکار بکنم پسره را چه کار بکنم؟ اسلام گفت حالا در چه حاله؟ کت خدا گفت برگشته رو به قبله خوابیده مرد اول خم شد و به اسلام گفت میخواد به برد شهر؟ بعد رو کرد به کت خدا و ادامه داد بهتر نیست تا صبح صبر کنی؟ کت خدا گفت میترسم به صبح نرسه من بیشتر تو فکر رمضان هستم پیرزن دیگه تموم کرده میترسم بچه از غصه بلایی سر خودش بیاره. چه کارش بکنم ها؟ نشسته کنار ننش و ای زار میزنه. زار میزنه و گریه میکنه. اسلام پرسید: چه جوری می میبری شهر؟ کت خدا گفت: با گاری تو میبرمش لب جاده و ماشین پیدا میکنم. پاپاخ که دید کت خدا گرم صحبت است، نشست کنار استخر رو و پوزش را گذاشت روی هاش و ها را بست. کت خدا یک دفعه برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. پاپاخ هم سرش را بلند کرد و تاریکی را نگاه کرد. اسلام گفت چی شد؟ کت خدا گفت میشنفی؟ صدای زنگوله میاد نمیاد؟ اسلام و مرد اول گوش دادند اما صدای زنگوله را نشنیدند. اسلام گفت کت خدا منم با میام که گاری رو برگردونم. سرش را برد تو و فانوس را روشن کرد و کلاهش را گذاشت سرش و از پنجره آمد بیرون. مرد اول پنجره را بست. زنش آمد و دوتایی پشت پنجره ایستادند و پاهای کت خدا و اسلام و پاپاخ را که فانوس روشن کرده بود تماشا کردند. اسلام گفت کاراتو چه می کنی؟ کت خدا گفت میدم دست تو، فکرم همش پیش رمزانه می ترسم ننش بمیره و بچه بلایی سر خودش بیاره آن طرف استخر که رسیدند روشنایی فانوس افتاد تو آب ماهی آمدن کنار استخر و مردها را نگاه کردند پاپاخ خم شد که ماهیها را ببیند اما چشمش که به ماه افتاد وحشت زده برگشت و دوید دنبال مردها کت خدا گفت رمزانم با خودم میبرم اگه نبرمش صدای فهاشان تو کوچه پیچید و یلی که فانوس را دیدند و فکر کردند نن رمزان تمام کرده از پنجرها ریختند بیرون. پیرمردها ها که نمی از خانه خارج شوند کله هاشان را از های پشت بام ها بیرون آوردند. گاری را تا حاضر شد آوردند سر کوچه همه ساکتی استادند. اسلام و مشجی جبار و عباس و موسرخه نن رمزان را که توی لحاف پیچیده بودند آوردند و گذاشتن توی گاری و منتظر شدند رمضان که دگمه های جلیغش رو میبست خوشحال و شنگول پیدا شد دوان دوان آمد رفت روی گاری و نشست پهلوی مادرش نن خانوم و نن فاطمه با آب تربت آمدند کنار گاری نن خانوم دهان نن رمضان را باز کرد و ننه فاطمه یک قاشق آب تربت ریخت توی حلق پیرزن و آقا که با امامه بزرگش ایستاده بود طرف دیگر گاری تون تون دعا خواند اسلام و کت خدا نشستند جای سورچی و چفخهاشان را چاخ کردند و ینی‌ها تا کنار استخر همراه گاری آمدند و ایستادند رمزان برگشت و نگاهشان کرد و ساکت زیر لب آنها را دعا می‌کردند. از ده که بیرون آمدند جاده روشن بود پاپاخ صد قدمی دنبالشان دوید اما ناگهان برگشت و آمد زیر درختها قایم شد و چشم به گاری دوخت صدای زنگوله از دور شنیده می شد. مسافتی که رفتند ماه پایین آمد پایین تر آمد و بزرگتر شد رمضان برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. بیل انگشتانش را بالا گرفته بود و آنها را دعا می کرد. اسلام و کت خدا نشسته بودند و گذاشته بودند که اسب برای خودش راه برود. رمضان پهلوی ننش دراز کشیده بود و دستش را گذاشته بود زیر سر مادر. هر چند دقیقه یک بار خم میشد، تکانش میداد و میگفت: ننه ننه بهتری. پیرزن که درد مبهمی توی سیناش میپیچید و تیر میکشید، آهسته میگفت: بهترم. و رمضان خوشحال میشد. کت خدا راضی و آسوده بود و فکر میکرد که چیزی از شب نمانده است. یک دفعه صدای ننه رمضان بلند شد که میگفت: سرمو بگیر بالا، سرمو بگیر بالا. رمزان سر مادر را گرفت بالا ننه با چشمهای باز، بیابان و تاریکی را نگاه کرد رمضان گفت چی میخوای ننی؟ ننه جون چی میخوای؟ ننه رمضان گفت میخوام بدونم این دیگه چیه؟ رمضان گفت اسلام اسلامو که از خدا برگشتند و نگاه کردند ننه رمضان گفت این صدا که میاد گاری را نگه داشتند صدای زنگوله از دور شنیده می شد کت خدا با آرنج زد به پهلوی اسلام و پرسید میشنفی؟ اسلام گفت صدای زنگوله است کولیا دارن از پشت گورت میشن. شن خلخالای پاشون اینجوری جیرین جیرین می کنه کت خدا گفت نه کولیا نیستند هنوز خیلی مونده که پیداشون بشه اسلام گفت آه پروسیا ها هستند گشگون از تای دره رد میشن و گسفندایی رو که دیدن و خودشون میبرند کت خدا گفت پروسی هایی ایج وقت و صدا راه نمیرند مثل سایه میان و مثل سایه برمیگردن رمضان گفت من میدونم پاپاخه که داره میاد اونهاش؟ و با انگشت تاریکی را نشان داد نن رمضان بریده بریده گفت پاپاخ نیست پاپاخ که سنگوله نداره صدا دور شد و برید کد خدا شلاق را برد بالا اسب را افتاد مسافتی رفتند اسلام که میخواست حرف بزند گفت من از این صدا زیاد میشرفم نه اینکه تنهام تنه شبا میرم پشت بام میشینم و گوش میکنم اون وقت از این صدا زیاد میشرفم رمیزان دستهایش را حلقه کرد دور گردن ننش و گفت ننه نه ترس مشتی اسلام از این صدا زیاد شنیده حالا دیگه راهی نمونده تا برسیم خوب میشی پیرزن ناله ای کرد و گفت دارم میمیرم رمضان زد زیر گریه و ننه را محکمتر تر بغل کرد و گفت نمیذارم بمیری نمیذارم ننه اسلام برگشت و گفت شلوغ نکنین حالا میرسیم سر جاده و ماشین پیدا میکنی بعد برگشت و از کت خدا پرسید کت خدا این رمضان تو چند سالشه؟ کت خدا گفت دوازده سالش تموم شده اسلام گفت بارک مرد به این گندگی داره گریه میکنه حالا که طوری نشده واسه چی گریه میکنی؟ رمضان گفت میترسم ننم بمیره اسلام گفت ننت نمیمیره نترس اما آخرش که باید بمیره اون وقت چی کار میکنی؟ ننه همه ما مرده ننه من ننه کت خدا اینطور نیست کت خدا؟ این دار نیست نه, نه رمزان؟ هیچ کس جواب نداد. اسلام گفت کت خدا از شرک برگشتی باید براش زن بگیری. ده که پور دختره و دختر مشتی بابا چاق و چله سرخ و سفیدو حرفش را تمام نکرد. صدای زنگوله دوباره نزدیکتر شده بود. چارتایی با دقت گوش دادند. کت خدا گاری را نگه داشت. اسلام گفت بر پدر عباس لعنت که زنگوله ها را آورده بسته زیر گاری. پیاده شد و رفت زیر گاری. به هر گوشه دست مالید اما زنگوله ها را پیدا نکرد. راه که افتادند اسلام گفت هسته نخورین. هوا که روشن بشه معلوم میشه که زنگوله ها کجان. آنها رفتند و رفتند. هوا که روشن شد صدای زنگوله ها برید و جاده از دور پیدا شد. اسلام کنار جاده روی گاری منتظر نشست تا برای مسافرها ماشین پیدا شد آن وقت شلاق را بلند کرد و مثل باد به طرف بیل راه افتاد کتخدا و رمضان ننه را سوار ماشین کردند و روی گونیهای های برنج خواباندند حال ننه رمضان خرابتر شده بود سیاهی چشمانش پیدا نبود و نفسهای بریده بریده می کشید می ترسید که پیرزن توی ماشین بمیرد. میخواست هرطوری شده رمزان را از کنار ننش دور کند اما رمزان دستهای بی حالت و وارفته رفته را توی دستهایش گرفته بود و کنار نمیرفت. خواب، چشم های خستش را پر کرده بود و گوشهایش به زحمت میشنید. مادرش را میدید و نه گرد و خاک جاده را، و نه صدای زنگوله را می شنید که از دوروبر ماشین بر ظهر خواست کنار پیچ جاده ماشین را توی یک وجب سایه که از بریدگی کوه پیدا شده بود نگه داشتند کت خدا سفره را پهن کرد روی گونی ها رمزان تکی نان برید با شله گندم پر کرد و به زور لبهای ننش را از هم باز کرد و شله را ریخت روی دندانهاش کت خدا گفت نمیتونه بخوره کارش نداشته باش راننده آمد با چشمان پفالود از گوشه کامیون نگاه کرد و پرسید چشه کت خدا گفت مریضه راننده گفت میبریش کجا مریضخونه کت خدا گفت آره چه کارش بکنیم راننده گفت دو مریض خونه ها که رسیدگی نمی‌کنن میذاشتین تو ده راحت تموم کرد رمضان و کت خدا به هم نگاه کردند های ننه کوتاهتر شده بود. چشمهایش را گرد و خاک پر کرده بود. یک مشت مگس سبز دور لبهایش نشسته بود. کتخدا گفت: کاش قرآن ورداشته بودیم. رمضان با گریه گفت: نه نه نمیمیره. کت خدا گفت: میدونم. میدونم. راننده گفت: پسرشه. کتخدا خدا که سفره را جمع می می‌کرد گفت: آره پسرشه. پسر منم هست. راننده سریتکان داد و گفت امروز روز پسرا کمتر از مرگ ننشان دار میشن منم مثل این پسر بودم مادرم ده سال بیشتره که مرده اما نمیتونم فراموشش کنم بعد رو کرد به رمضان و گفت نه ترس تاری نمیشه نمیمیره میبرم یه مریض خوب اونجا بهش رسیدگی میکنن بلند میشه و را میفته رمضان بلند شد و نشست و گریه هایش را خورد آفتاب تازه کت شده بود و زیر پایانها در ریگ بزرگی با تخت سنگهای سیاه دهان باز کرده بود. رمضان گفت نگاه کن بابا میشنافی اونجاست. کت خدا صدای زنگوله را شنید. راننده گفت چی رو میگی؟ رمزان گفت تو نمیشنافی صدای زنگا را نمیشنافی؟ راننده گفت صدای زنگا؟ هیچ وقت این طرف ها شنیده نمیشه بعضی وقتا جیر جی لب جاده جمع میشن اونم موقع شب حالا که تنگ زهره ماشین که را افتاد صدای جیر جی برید اسلام که وارد بیل شد مردم دور استخر جمع شده بودند اسلام از گاری پیاده شد و رفت طرف جماعت و گفت رفتند مشتی بابا که زیر بید نشسته بود گفت پیرزن که میمیره کت خدام که پوستش گلفته دارش برمی ده برمیگردده اون بچه خدا میدونه که چی به سرش بیاد بابا علی از وسط مردها گفت براش دا بگیرن خوب میشه مشتی جعفر پسر مشتی سفر گفت تاری نمیشه اون دیگه بچه نیست تا چشم هم بزنی مادر رو فراموش میکنه و میفته تو خیالات دیگه اسلام گفت نماشی بابا هممون هم میدونیم که نر رمضان میمیره بعد که خدا دست پسرشو میگیره و برمیگردده رمضان واسه مادرش بیتابی میکنه اون وقت من و خداداد میایم خونه تو و دخترک رو خواستگاری میکنیم وقتی براش سنگ گرفتیم دیگه قصه مادرشو نمیخوره زنها که آن طرف استخر جمع شده بودند در گوشی حرف زدند دختر مشتی بابا که تازه از زیارت نبی آقا اومده بود پشت سر دیگران قیم شد مشتی بابا پرسید کت خدا خودش گفت اسلام گفت نه من گفتم اونم قبول کرد تا برگشتن بده ده منو کت خدا میایم خونه تو مشتی بابا گفت کارها دست خداست اسلام سوار گاری شد و اسب را هی کرد و از ده رفت بیرون زنها نشستند دور هم مشتی بابا چپقش را چاخ کرد و رفت توی خیالات و دخترش از کنار دیوار دوان دوان رفت و تا به خانه رسید جلوی آینه ایستاد و چشمهایش را سرمه کشید. دربان مریضخانه در را باز کرد. کت خدا زنش را بغل گرفته روی زمین نشسته بود. رمضان که به در مریضخانه که داده بود تا در باز شد پرید تو. دربان عصبانی پرسید کجا؟ یاد خدا گفت زنم مادر این بچه داره می میره. رمزان زد زیر گریه گرد و خاک سر و را پوشانده بود دربان در را چار تاخ کرد آنها وارد هشتی شدند که تاریک و نمور بود پیرزن را که چشمهایش باز مانده بود و نفس‌های آخر را می کشید روی نیمکت دراز کردند دربان گفت بهتر بود می‌بردینش یه جای دیگه تو مریضخونه این جور مریض‌ها رو قبول نمی‌کنن گریه رمضان بلندتر شد. خدا گفت جای دیگه کجاست؟ دربان گفت میدونی مریضخونه خونه ما نشکش و ماشین از از اینجور چیزان نداره. همش چند تا اتاق و یه دکتر. اگه خوب نشد اون وقت چه کارش میکنی؟ چجوری میبریش اونجا؟ کتخدا و رمضان هر دو التماس کردند. دربان گفت خیلی خوب. زن رمضان را برداشتند و از هشتی وارد حیات بزرگی شدند و رسیدند به هشتی دوم و از هشتی دوم پله ها را رفتند بالا روی پله ها شمد و پنبه خونالود و دواقرمز ریخته بود زن لاغری پیرهن سفید به تن با دوتا بچه کنار پله ها ایستاده بود و بچه دیگری هم به بغل داشت تا آنها را دید گفت این میت را واسه چی میاریم بالا؟ کت خدا گفت بذاریم بیاریمش، هنوز جون داره رمضان بلند بلند گریه کرد و زن جلو رفت و به ششمهای پیر زن نگاه کرد و گفت تموم کرده نه رمضان نفس بلندی کشید زن گفت خیلی خوب، بیارینش بالا همیشه مریزا رو موقعی میارین که دیگه کاری از دست ما ساخته نیست در رو باز کردند اتاقی پیدا شد با قندیلی که از سقف آویزان بود و شم کوچکی توی آن میسوخت. چراغ کم نوری هم روی تاقچه گذاشته بودند سه تخت خالی هم در گوشه اتاق کار گذاشته بودند که انباشته بود از شمد و پنبه های آلوده دربان به پرستار گفت بازم شم روشن کردی؟ پرستار گفت میترسم نفت تموم شد تو تاریکی بمونه. نن رمزان را رو روی تخت گذاشتند رمزان و کت خدا برگشتند و کنار در نشستند دربان گفت، چرا نشستی؟ پاشو بریم دکتر رو خبر کنیم. کت خودو بلند شد و با دربان رفتن پیرون. رمضان بلند شد و رفت پیش مادرش و چشمهایش را نگاه کرد که به قندیل دوخته شده بود و با خود گفت، اینهاش داره خوب میشه، داره چراغ و نگاه میکنه. پرستار پرسید، چند وقت مریضه؟ رمضان گفت، نمیتونم. با گاری مشصللا آوردیمش کنار جاده و از اونجام با ماشین باری اینجا. و پرستار کنار در ایستاده بودند و پیرزن و پسرش را نگاه میکردند و دستهای پیرزن را که آرام آرام از لبه تخت خواب آویزان می شدند.